فیوه سیاه چاله بودن نورا هفت ساعت پیش از آنکه که تصمیم به مردن بگیرد کاملا آشفته شده بود و کسی را نداشت که با او حرف بزند. آخرین امیدش ایزی صمیمیترین دوست سابقش بود که بیش از ده هزار مایل با او فاصله داشت و در استرالیا بود تظیم رابطهشان هم مثل قبل نبود گوشیاش را بیرون آورد و پیامی برای ایزی فرستاد سلام ایزی. خیلی وقت چد نکردیم دلم برای تنگ شده دوستم خیلی خوب میشه اگه با هم حرف بزنیم بوس یک بوس دیگر هم به پیامش اضافه کرد بعد فرستاد کمتر از یک دقیقه بعد ایزی پیامش را دید نورا ناامیدان منتظر ماند تا سه نقطه پدیدار شود از جلوی سینما گذشت آن شب در سینما فیلمی جدید از رایان بیلی پخش می شود. فیلم رومانتیک و لوس و خونک کابویی به اسم میخانه آخر جاده. همیشه از چهره رایان بیلی اینطور برمیآمد که چیزهای خاص و عمیقی می داند. از زمانی که رایان بیلی در نقش افلاتون توی برنامه ی آتنی ها در تلویزیون بازی کرد و همچنین وقتی در مساهبه ای گفت که فلسفه خوانده است، نورا از او خوشش آمد. همیشه خودشان را تصور می کرد که در جکوزی خانه رایان بیلی در وست هالیوود نشستند و از پشت پرده بخار آب با همدیگر گرم گفتگویی امیق درباره هنری دیوید سرو هستند. سرو می گفت با اطمینان به سوی رویاهایت قدم بردار. آن زندگی را تجربه کن که تصور کرده مطالعه درباره سرو را از بقیه فیلسوف ها بیشتر دوست داشت. اما واقعا چه کسی با اطمینان به سوی رویاهایش قدم برمیداشت؟ خوب، البته بجز خود سرو که بلند شد و رفت وسط جنگل زندگی کرد و ارتباطش را با دنیای خارج از جنگل قطع کرد تا خیلی راحت فقط سر جایش بنشیند و بنویسد و هیزم خورد کند و ماهی بگیرد. اما احتمالاً زندگی مردم دو قرن پیش در شهر کنکرد ماساچوسیت، از زندگی نوین در بدفورد بدفورد شایر ساده تر بوده. شاید هم نبوده. ساعتها گذشتند. نورا می‌خواست هدفی داشته باشد. چیزی که دلیلی برای بودنش باشد. اما هیچ چیز نداشت. حتی هدفی کوچک مثل تحویل گرفتن داروهای آقای بنرژی از داروخانه. اما همان را هم نداشت. چون دو روز پیش این کار را کرده بود. سعی کرد مقداری پول به مردی بی خانمان بدهد، اما متوجه شد پولی ندارد، کسی گفت شاد باش عزیزم، ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته، نورا با خود فکر کرد، هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد، اصل مشکل همین بود، حاد ماده نورا پنج ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد به سمت خانه راه افتاد که گوشیش توی دستش لرزید شاید ایزی بود شاید راوی به برادرش گفته بود که با او تماس بگیرد او سلام دوریان صدایش عصبی بود کجا بودی؟ کاملا فراموش کرده بود الان ساعت چنده؟ روز خیلی بدی داشتم خیلی معذرت میخوام یه ساعت جره خونت منتظر موندی. وقتی برگردم هنوزم میتونم به لعو درس بدم، پنج دقیقه دیگه میرسم، دیگه دیره، رفت که سه روز پیش باباش بمونه وای متاسفم، خیلی معذرت میخوام، سیر معذرت خواهی هایش جاری شد و نزدیک بود او را در خود قرق کند راستشو بخوای، لعو مدتی که میخواد پیانو یاد گرفتن رو بیخیال بشه نورا، اما خیلی ماهره تا الان واقعا ازش لذت برده ولی سرش خیلی شلوغه امتحان و دوستاش و فوتبال بالاخره یه چیزی باید این وسط هست بشه واقعا مهارت زیادی داره حتی از شپن لعنتی هم خوشش اومده خواهش میکنم آهی بسیار بسیار امیق خدا حافظ نورا نورا تصور کرد که زمین دهان باز میکند و او را میبلد از پوسته و گوشت عبور میکند و بعد به هسته یه مرکزی فلزی سخت و فشرده زمین میرسد نورا چهار ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، از جلوی همسایه پیرش آقای بنرژی گذشت. آقای بنرجی 84 سال داشت، ضعیفش و شکننده بود، اما بعد از عمل لگنش بیشتر حرکت میکرد. هوای بیرون خیلی بده، مگه نه؟ نورا زمزمه کرد، آره، بنرژی به باخچه گلهایش نگاه کرد، ولی زنبقه ها شکوفه کردن. نورا به دسته گلهای بنفش نگاه کرد و به زور کشید لبخندی بزند. همزمان به این فکر می کرد که این گلها برای آقای بنرجی تا چه اندازه می توانند مایی تسلی باشند. چشمان آقای بنرجی پشت اینکش خسته بودند. جلوی در ایستاده ایستاده بود و با کلیدهایش فر می رفت. شیشه شیری درون سبد توی دستش بود که به نظر می رسید برایش زیادی سنگین باشد. به ندرت میشد او را بیرون از خانه دید خانه ای که نورا در ماه اول آمدنش به این محله از آن دیدار کرده بود تا در راهاندازی سبد خرید آنلاین خاربار فروشی به آقای بنرژی کمک کند آقای بنرژی گفت آهان راستی یه خبر خوب دارم دیگه لازم نیست قرصامو از داروخونه بگیری بگیری بسنی که توی دارو کار میکنه. به همین نزدیکی ها نقل مکان کرده و گفته قرصامو برا میاره نورا سعی کرد جوابی بدهد اما کلمات از دهانش بیرون نمی آمدند در عوض سری به تعیید تکان داد آقای منرژی موفق شد در خانهش را باز کند بعد وارد محرابی شد که برای همسر عزیز مرحومش ساخته بود و در را پشت سرش بست تمام شد کسی به نورا نیاز نداشت در این دنیا اضافه بود وقتی داخل خانهش رفت سکوت برایش از هر سر و صدایی بلندتر بود بوی غذای گربه کاسه‌ای که برای ولتر پر کرده بود و ولتر هم نصفش رو خورده بود برای خودش آب ریخت دوتا قرص زد نفسردگی خورد و اندیش مندانه به بقیه قرص خیره شد سه ساعت پیش ازان که تصمیم به مردن بگیرد تمام بدنش از حسرت و پشیمانی تیر می‌کشید. انگار که ناامیدی توی ذهنش به طریقی راهش را به تن و اندامهایش باز کرده بود. گویی ذره زر زرگی وجودش را به تسخیر خود درآورده بود. به یادش می آورد که همه در نبود او زندگی بهتری خواهند داشت. اگر نزدیک سیاه شوی نیروی جازبهش تو را به عمق حقیقت شوم و تاریک خود می کشد. این فکر مثل اسپاسم ذهنی اجتناب نپذیری به جانش افتاد. حسی آزار دهندهتر از آن که بشود تحملش کرد و قدرتمندتر از آن که بشود از چنگش گریخت نورا در شبکه های اجتماعیش چرخی زد نه پیغامی، نه نظری، نه دنبال جدیدی، نه درخواست دوستی جدیدی نورا مثل پادماده بود، با اندکی، چاشنی بیچارگی وارد این شد و دید که همه زندگیشان را ساختند روز او یاد داشتی او و در هم در فیسبوک نوشت که البته دیگر خیلی از آن استفاده نمی کرد. دو ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، سر بطری نوشیدنی را باز کرد. کتاب های فلسفه قدیمی همچون ارواحی بی مانده از دوران دانشجوییش، دورانی که زندگی هنوز پر از احتمالات ممکن بود، از بالای قفسه ها به او خیره نگاه می کردند. یک گل یوکای زنگولئی و سه کاکتوس کوچک توی گلدان. نورا تصور میکرد داشتن زندگی بدون ادراک و تمام روز را در گلدان گذراندن احتمالا راحت است. پشت پیانوی الکتریک که کوچکش نشست. اما آهنگی ننواخت. به زمانهایی فکر کرد که کنار لئو مینشست نشست و یادش میداد چطور پیشتر آمده شوپن را در گام میمینور بنوازد. لحظات خوش هم اگر به اندازه کافی مهلت داشته باشند، می توانند به درد تبدیل بشوند. کلیشه ای در دنیای موسیقی هست که میگوید هنگام پیانو نوازی هیچ نوتی اشتباهی نیست. اما زندگی نورا ترکیبی از تمام سر و های ناموزون بود. قطعی که می توانست به اشکال زیبایی نواخته شود، اما در بدترین مسیر پیش ره. زمان گذشت و نورا بیان که جایی را ببیند، به اطراف خیره ماند. پس از خوردن نوشیدنی به درکی کاملا واضح و آشکار رسید. برای این زندگی ساخته نشده بود. هر حرکتش اشتباه بود. هر تصمیمش فاجعه و هر روزش اغب نشینی از آن کسی که در تصوراتش از خود ساخته بود. شناگر، موسیقیدان، فیلسوف، همسر، مسافر، یخچال شناس، خوشحال، محبوب، هیچ چیز حتی نتوانسته بود عنوان صاحب گربه یا استاد یک ساعته هفتگی پیانو یا انسانی با روابط عمومی متوسط را برای خود حفظ کند قرصهایش جواب نداده بودند نوشیدنی را تمام کرد تمامش را روبه فضای خالی اطرافش گفت دلم براتون تنگ شده. انگار که روح تمام کسانی که در عمرش دوستشان داشته بود در اتاق همراهش بود. با برادرش تماس گرفت و وقتی گوشی را برنداشت برایش پیغامی صوتی گذاشت. دوستت دارم جو. فقط میخواستم این رو بدونی. کاری از دستت بر نمیومد. مشکل منه. ممنون که برادرم بودی. دوستت دارم. حافظ. باران دوباره باریدن گرفت. بنابراین نورا همانطور که پرده ها کنار بودند، دشست و به برخورد قطرات آب به شیشه خیره شد. حالا بیست دو دقیقه از ساعت یازده گذشته بود. نورا فقط یک چیز را با اطمینان کامل می دانست. این که نمی خواست به فردا برسد. بلند شد. قلم و کاغذی پیدا کرد. به این نتیجه رسید که زمان بسیار خوبی برای مردن است، عزیزی که این نامه رو میبینی من موقعیت های زیادی برای ساختن زندگیم داشتم و تک تکشون از دست دادم با بیهتیاتی و بدشانسی خودم دنیا روی خوشش رو از من گرفت بنابراین کاملا منطقی به نظر میرسه که من هم دیگه باید روم از دنیا بگیرم. اگر احساس می کردم موندن هم ممکنه می موندم. اما چنین حسی ندارم. بنابراین نمیتونم بمونم. با موندنم زندگی رو برای دیگران بد می کنم. چیزی برای ارائه ندارم. متاسفم. با هم دیگه مهربون باشید. خدا نگهدار. نورا. دوازده نیمه شب در ابتدا مه آنقدر فراگیر بود که نورا نمی چیز ببیند تا اینکه کم کم ستونهایی در دو سمتش پدیدار شدند در مسیری ایستاده بود که دو سمتش ستونها ردیف شده بودند رنگ ستونها مثل مغز خاکستری بود و های آبی روشن داشت بخارهای مهمانند مثل ارواهی که دوست نداشته باشند دیده شوند از بین رفتند و شبه چیزی از پشتشان پدیدار شد. چیزی مستطیلی و جامد، شبه یک ساختمان، تقریبا هم اندازه یک کلیسا یا سوپرمارکتی کوچک نمایی سنگی و همرنگ با ستونها داشت و در چوبی بزرگی وسطش بود. جزیات ریز و ظریف سقف و همچنین ساعت بزرگ جلوی آن تصویر شکوه و جلال را القا کرد. ساعت درست جلوی نقطه اتصال شیبهای دو سمت سقف قرار گرفته و اعداد رومی با رنگ سیاه روی آن نوشته شده بودند. اغربه هایش نیمه شب را نشان میدادند. پنجره های تاریک و تاقدار با قاب های سنگی در فواصل مساوی روی دیوار جلویی ساختمان کار شده بودند. در نگاه اول نورا فقط چهار پنجره دید. اما یک لحظه بعد مطمئن بود که پنج پنجره می‌بیند. به این نتیجه رسید که حتما اشتباه شمرده. با توجه به اینکه دور تا دورش هیچ چیز دیگری نبود و جای دیگری نداشت که برود، محتاطانه قدمی به سمت ساختمان برداشت به ساعت دیجیتال روی مچش نگاه کرد تبرانچ ساعت می گفت دقیقا نیم شب بود نورا منتظر ماند تا ثانیه بعدی سر برسد اما نرسید حتی وقتی به ساختمان نزدیکتر شد در چوبی را باز کرد و قدم به داخل ساختمان گذاشت اعداد روی صفحه ساعت تغییر نکردند یا ساعتش خراب شده بود یا اینکه بلایی سر زمان آمده بود در این شرایط هر دو احتمال ممکن بود نورا فکر کرد چی شده؟ اینجا چه خبره؟ همانطور که داخل می رفت به این فکر افتاد که شاید در اینجا بتواند جوابی برای سؤالهایش پیدا کند داخل ساختمان حسابی روشن بود و با سنگ روشن آن را سنگ فرش کرده بودند. رنگی میان زرد روشن و قهوه‌ای شطوری مثل رنگ کاغذ کتاب قدیمی. اما پنجره هایی را که از بیرون دیده بود در داخل ساختمان نمیدید. در واقع با این که فقط چند قدم در داخل ساختمان پیش رفته بود دیگر نمی دیوارها را ببیند. در عوض همه جا پر از قفسه‌های کتاب بود. ردیف به ردیف طبقات پر از کتاب که تا بالا می رفتند و از راه روی عریزی که نورا درونش قدم می زد منشعب شده بودند. نورا در یکی از ردیف ها پیچید و ایستاد تا با سردرگمی به کتاب های ظاهرن پایان نگاه کند. همه جا پر از کتاب بود. خود طبقات آنقدر باریک بودند که انگار اصلا دیده نمی شدند و نامری بودند. کتاب ها همه سبز رنگ بودند، اما سایه های مختلف و متفاوت سبز. برخیشان مثل آب مرداب، سبز مات، برخی دیگر سبز روشن مغز ای، برخی سبز زموردی تیره و برخی دیگر هم به روشنی و شادی چمنهای تابستان. حالا که بحث چمنهای تابستان شد، با اینکه کتابها قدیمی به نظر می رسیدند، هوای کتابخانه بسیار تازه بود، بوی خوشایند و شبیه حیاتی پوشیده از چمن داشت نه شبیه کتاب های قدیمی و خاک گرفته واقعا به نظر می رسید طبقات تا ابد ادامه دارند و مستقیم به سمت افقی ناپیدا و دوردست می روند. مثل خطوطی که در پروژه هنری مدرسه به پرسپکتیوی تک نقطه کشیده شده بودند و فقط گهگاهی راه رویی وسطشان دیده می شد و این نظم را به هم میزد. نورا یکی از راهروها را تصادفی انتخاب کرد و در به راه افتاد. در تقاطع بدی به چپ پیچید و اندکی گم شد. دنبال راه خروجی گشت. اما هیچ نشانه یا تابلوی خروجی ندید. سعی کرد قدم های پیش رفته را برگردد. اما غیر ممکن بود. در نهایت به این نتیجه رسید که قرار نیست راه خروج را پیدا کند. برای که دست کم با شنیدن صدای خودش کمی آرام شود گفت غیر طبیعیه، واقعاً غیر طبیعیه ایستاد و قدمی به طرف چند تا از کتاب برداشت هیچ عنوان یا نام نویسندهای روی عطف کتاب ها نوشته نشده بود روز تفاوت رنگشان تنها وجه تمایز دیگری که داشتند حجمشان بود ارتفاع کتابها یکسان بود اما قدرشان تغییر می کرد. عطف بعضی هایشان دو اینچ قطر داشت و بعضی دیگر به شدت کمتر. یکی دوتایشان که اصلا مثل بروشورهای نازک بودند. دست دراز تا یکی از کتابهای های متوسط را که رنگ زیتونی ملالاوری داشت از روی طبقه بردارد. کمی خاک گرفته و کهنه به نظر می آمد. پیش از آن که کتاب را کامل از طبقه بردارد، صدایی از پشت سرش شنید و عقب پرید. صدا گفت مراقب باش نورا برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است کتابدار. خواهش می کنم مراقب باش. زن ظاهرا از ناکجا آباد آنجا پدیدار شده بود. شیک پوش بود. موی سری کوتاه داشت و پولیور یغیسکی سبز لاکپشتی پوشیده بود. اگر نورا میخواست سنش را حدس بزند میگفت حدوداً شست ساله است. شما کی هستید؟ اما پیش از اینکه سوالش را کامل کند دریافت که خودش از قبل جواب را میداند زن محجوبانه گفت کتابدار این کتابخونه چهرهش مهربان اما جدی و خردمند بود همان موی خاکستری به دقت پیرایه شده همیشگی را داشت و صورتش دقیقا همان شکلی بود که نورا به یاد می آورد چرا که زن پیش رویش همان کتاب داره پیر مدرسهش بود. خانم علم؟ خانم علم لبخندی کم رنگ زد. شاید. نورا به یاد آن بعد از ظهرهای بارانی افتاد که با همدیگر شطرنج بازی میکردند. روزی را به یاد آورد که پدرش مرد و خانم علم آرام آرام این خبر را در کتابخانه به او رساند. پدرش در زمین راگبی مدرسه شبان روزی که در آن تدریس می‌کرد، ناگهان دچار سکته قلبی شده و درگذشته بود. آن روز نورا حدود نیم ساعت کاملا گیج و سردرگم به بازی نیمه تمام شطرنجشان خیره شده بود. در ابتدا حقیقت برایش سنگینتر از آن بود که بتواند درکش کند. بعد ناگهان به ذهنش هجوم آورد و او را با دنیایی ناشناخته آشنا کرد. نورا خانم علم را در آغوش گرفته بود و صورتش را به لباس یقیسگی او چسبانده و آنقدر گریه کرده بود که صورتش به خاطر ترکیب اشک و رنگ آکریلی لباس دچار حساسیت شد. خانم علم فقط او را در آغوش گرفته و مثل بچه پشت سرش را نوازش کرده بود. نه حرفای کلیشه ای زده و نه سعی کرده بود با حرفای دروغین آرامش کند. برعکس فقط نگرانش بود. نورا صدای خانم علم را به یاد می‌آورد که می‌گفت همه چیز بهتر میشه. نورا، همه چیز درست میشه. یک ساعت طول کشید تا مادر نورا دنبالش آمد. برادر نورا نشه و بیخیال روی صندلی عقب نشسته بود. نورا هم روی صندلی کنار مادر ساکت و لرزانش نشسته و به او گفته بود که دوستش دارد. اما هیچ جوابی نگرفته بود. اینجا کجاست؟ من کجا؟ خانم علم لبخندی بسیار رسمی زد. خوب، مشخصاً اینجا کتابخونه است. ولی کتابخونه مدرسه نیست. راه خروجی هم نداره. من مردم؟ اینجا دنیای بعد از مرگ؟ خانم علم گفت: "نه دقیقاً. نمیفهمم. پس بذار توضیح بدم." کتاب نیمه شب در حالی که خانم علم صحبت می‌کرد، چشمانش گویی جان گرفته بودند و مثل چاله هایی پر آب زیر نور ماه می‌درخشیدند. گفت، بین زندگی و مرگ یک کتاب خونه هست. توی اون کتاب خونه هم طبقات کتاب تا ابد ادامه دارد. هر کتاب موقعیت این رو بهت میده که یکی از زندگی هایی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی تا ببینی اگر انتخاب های کرده بودی چی میشد؟ اگه موقعیت این رو داشتی که حسرت هات رو از بین ببری کار متفاوتی انجام میدادی؟ نورا پرسید، پس واقعا مردم؟ خانم علم سرتکان داد، نه، دقیق گوش کن. بین زندگی و مرگ اشارهای محف به انتهای راه رو و افق کرد مرگ اون بیرونه خب پس باید برم بیرون چون خودم میخوام بمیرم نورا راه افتاد که برود اما خانم علم سرتکان داد روند مرگ اینطوری نیست چرا؟ نمیتونی بری سراغ مرگ مرگ میاد سراغ تو ظاهرا قرار نبود نورا حتی در مرگ هم موفقیتی به دست بیاورد حس آشنایی بود. حس ناکاملی در همه زمینه ها. مثل یک پازل انسانی ناتمام. نیمه زنده و نیمه مرده. خب چرا نمردم؟ چرا مرگ نیومده سراغم؟ من خودم دعوتش کردم که بیاد. میخواستم بمیرم. اما هلون میبینم اینجا ما هنوز وجود دارم هنوز همه چیز رو هنوز همه چیز رو حس میکنم خوب اگه این حرفم مایه ای آرامشت میشه بهتره بدونی که به احتمال زیاد داری میمیری کسانی که به کتابخونه میان حالا سرنوشتشون هرچی که باشه معمولا خیلی اینجا نمیمونن نورا هر وقت به این موضوع فکر می کرد که البته این اواخر بیشتر و بیشتر هم شده بود. همیشه فقط کمبودهایش را می دید. چیزهایی که نتوانسته بود با آنها برسد. واقعا هم خیلی چیزها بودند که نورا به آنها نرسیده بود. حسنت های زیادی داشت که پیوسته توی سرش تکرار می شدند. توی المپیک شنا نکردم. یخچال شناس نشدم. همسر دن نشدم. مادر نشدم خواننده اصلی گروه هزارتون نشدم موفق نشدم آدمه واقعا خوب یا شادی بشم نتونستم از ولتر مراقبت کنم و حالا بعد از تمام اینها حتی نتوانسته بود بمیرد واقعا شرماور بود که این تعداد از احتمالات مختلف را نابود کرده بود تا زمانی که کتاب نیمه شب وجود داره تو هم از مرگ حفظ میشی نورا حالا باید تصمیم بگیری میخوایی چطور زندگی کنی؟ طبقات متحرک طبقات کتاب دو سمت نورا شروع به حرکت کردند زاویه هایشان عوض نمی شود. فقط افقی می و جابجا جا شدند این احتمال هم بود که اصلا طبقات حرکت نمی کنند و این کتاب ها هستند که جابجا میشوند. اصلا هم مشخص نبود که چرا یا حتی چگونه هیچ ابزار و وسیلهی دیده نمی شد که این کار را انجام دهد صدایی به گوش نمیرسید و کتابها هم از انتها یا ابتدای طبقات بر زمین نمیریختند کتابها بر اساس اینکه روی کدام طبقه قرار داشتند با سرعتی متفاوت میلغزیدند اما هیچ کدامشان خیلی سریع حرکت نمیکردند چه اتفاقی داره می گفتفته چهرهی خانم علم در هم رفت قامتش را صافتر کرد چانش را داخل برد قدمی به سمت نورا رفت و دستهایش را در هم گره کرد. وقتشه که شروع کنی عزیزم. اگه اگه اشکالی نداره اینو بپرسم چی رو شروع کنم؟ هر زندگی میلیون ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی از این تصمیم بزرگ هستند و بعضی کوچیک. اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه ای می میشه. این کتاب ها دریشه ای هستند به تمام زندگی هایی که تو میتونستی تجربه کنی. چی؟ تعداد زندگی هایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت داری؟ توی بعضی زندگی ها متفاوتی می کنی و اون انتخاب ها نتایج متفاوتی رو ایجاد میکنن اگه فقط یک کار رو متفاوت انجام داده بودی داستان زندگیت متفاوت میشد همه اون زندگی ها هم توی کتاب خونه نیمه شب وجود دارن همشون درست به اندازه این زندگی واقعیین یعنی زندگی های موازی نه همیشه بعضی هاشون بیشتر متقاطع هستند. خوب، دوستاری زندگی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی؟ دوستاری کاری رو متفاوت انجام بدی؟ چیزی هست که بخوای تغییرش بدی؟ کار اشتباهی کردی؟ جوابش آسان بود. آره، همه چیز. به نظر رسید این جوابش باعث شد بینی کتابدار قلقلک شود. خانم علم سریع دست در آستین لباس یقیسگیش فرو برد تا دستمال کاغذیش را بیرون بیاورد. بلافاصله آن را جلوی صورتش گرفت و داخلش عطسه کرد. نورا گفت عافیت بشه. و دید که چطور به محض تمام شدن استفاده کتابدار از دستمال جادویی عجیب آن را از توی دستانش قیب کرد. نگران نباش. دستمال ها هم مثل زندگی ها هستند. همیشه تعداد زیادی ازشون هست. خانم ایلب برگشت سر حرفش. انجام دادن فقط یک کار به شکلی متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام بدی. هر چقدر هم که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی رو که توی دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم. اما تو دیگه توی دوران زندگی نیستی. اومدی بیرون. این موقعیت رو داری که ببینی همه چیز میتونست چطور پیش بره. نورا در دل گفت، امکان نداره اینا واقعی باشه. ظاهرا خانم علم میدانست، او به چه فکر میکند. اما واقعی نورا سید. هرچند اون واقعیتی نیست که تو درکش میکنی. بهترین حالتی که میشه توصیفش کرد میانه است، نه زندگی و نه مرگ اون زندگی واقعی که فکر میکنی نیست اما رؤیا هم نیست نه اینه و نه اون خیلی کوتاه بخوام بگم کتاب خونه نیم شبه طبقات کتاب پیش از این آهسته حرکت میکردند متوقف شدند نورا متوجه شد که یکی از طبقات سمت راستش در ارتفاع شانه فضای خالی بزرگی دارد تمام بخش دیگر طبقات کاملا و شانه به شانه از کتاب پر بودند. اما اینجا فقط یک کتاب به پشت روی طبقه سفید و نازک قرار داشت. این کتاب خلاف بقیه کتاب ها نه سبز بلکه خاکستری بود. درست به همان اندازه خاکستری که وقتی نورا نخستین بار ساختمان را از ورای مهدید، دیوارهای سنگی خاکستری به نظرش رسیدند. خانم علم کتاب را از روی طبقه برداشت و به نورا داد. در نگاهش اندکی حس انتظار دیده میشد. انگار که کادوی کریسمس نورا را به او داده است. وقتی توی دست خانم علم بود سبکتر به نظر می رسید. اما خیلی سنگین از آن بود که نورا فکر می کرد. نورا شروع به باز کردن کتاب کرد. خانم علم سرتکان داد همیشه باید منتظر تعیید من بمونی چرا؟ همه ی کتاب های اینجا همه ی کتاب هایی که توی کتاب خونن همشون بجز یکی نوعی از زندگی تو هستند این کتاب خونه مال توه به خاطر تو اینجاست میدونی؟ چون زندگی هر کسی میتونه به بی نهایت شکل مختلف پیش بره کتاب‌های های توی طبقات زندگی تو هستند و همهشون هم از زمان یکسانی آغاز میشن همین الان نیمه شب سه شنبه بیست و هشتم افریل اما این احتمالات نیمه شبی با هم یکی نیستند بعضی هاشون شبیه همدیگه و بعضی هاشون بسیار متفاوتن نورا گفت دیوونه کننده است همهشون برز یکی؟ همین یکی؟ نورا کتاب خاکستری و سنگ مانند را به سمت خانم علم کج کرد. خانم علم ابرویی بالا انداخت. آره، همون. این کتابیه که نوشتی بدون اینکه هرگز حتی یک کلمه بنویسی. چی؟ این کتاب منبع تمام مشکلاتت و همچنین راه حل همشونه. خوب چی هست؟ اسمش کتاب حسرت هاست عزیزم.